سال بیش رفت که من لاف می که از چاکران پیر مغان کمترین منم هرگز به یمن آتفت پیر می فروش ساغر توهی نشد سمه صاف روشنم از جاه عشق و دولت رندان پاک باز پیوست صدر مستبه ها بود مسکنم در شأن من به دورت کشی زن بد مبر کالوده گشت جامه ولی پاک دامنم شهباز دست پادشه این چه حالت است که از یاد برده هوای نشی منم حیفه بلبلی چون من اکنون در این قفس با این لسان عز که خاموش چه سوسنم آب و هوای فارس عجب سفل پروره است کو هم رهی که خیمه از این خاک برکنم حافظ به زیر خرق قده تا به کی کشید در بزم خاجه پردز کارت برف کنم تورانشه خجسته که در من یزید فضل شد منت مواقب او توق گردنم